بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خرابنده بخشندگی مهربان. ان فتحنا لك فتح موبینا. ما برای تو پیرودی آشکاری تراحت کردیم. لیوفِرَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ نعمته تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا فخودبند از کوتاهی‌هایت که در گذشته است و به عمل آمده یا در آینده به عمل خواهد آمد درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام کند و تو را برافی آفی راه رهنمون شود وينصرك الله نصرا عزيزا. وتأترب فيروزين يوما ذي فيروز كتانا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود سدما و کان الله علیم حکیم اوساتیس کسکناف آرامش را در دلها ی مؤمنان نازل کرد تا ایمان بر ایمانشان افزوده شود. لشکر آفمان ها بر زمین از خدا و خدابند دانا و حکیم لیود المؤمنین والمؤمنات جنات جری تتح ان اوخوالی دی فيها و کطران هم سنیات وکن ذلك کاون الله فوزا فوز نظیمیم تا که و زنان با ایمان را در باغها یعب کند که نرها از زیر درختانش جاویز و کناهان آنها را ببخشد و این نست خدا، فيرضي بزرگه و المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات بالله عليهم جهنم و, و نیز مردان به زنان منافق و مردان به زنان مشرک را که به خدا گمان بد می برند مجازات کند حبادث سوئ تنها بر خودشان نازل می شود خداوند آنها را غضب کرده و آنها را از رحمت خود دور ساخته به جهنم را برای آنها آماده کرده و چه بد سرانجامی وللله نور السماوات و الله آسمان ها و زمین تنها از آن خداست و خداوند شکاف نافتی را حکیم إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاهدا ومبشرا وَنَذِيرًا ما ترى بأنباني قبار بعد بشارة دهنده وبيم دهندفر التعطي لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأطيلا و خدا بر رسولش ایمان بیاورید و او دفاع کنید او را بزرگ دارید و خدا را ص و شام تصبیح کنید این الذين که إنما منظ الله يد الله فوق أيديهم فمن نکس ينقص ينکس على نفسه ومن أوفى بما عاد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظیما انها <تصفيق> که تو بیعت میکنند در حقیقت فقط با خدا بیعتمین موکند و دست خدا بالای دست دست انها هلکس پیمان شکنی کند و زیان خود پیمان شکست است وانکست که نسبت به اهدی که با خدا بسته وفا کند به دودی پاداش عظیمی با او خواهد داد سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا لنا يقولون ما ليس في قلوبهم قل فمن يَمْلِكُ لَكُمْ من اللَّهِ شَيْئًا این اراد بکن ضرًا او اراد بکن نفعًا بلکان الله بما تعملون خبیرًا بزودی متخلفان از اعراب بادیانشین میکوگن حفظ اموال و خانواده ما را به خود مشغول داشت برای ما طلب آمرزش کن آنها به زبان خود چیزی میگویند که در دل ندارند بگو چی کسی میتباند در برابر خداوند از شما دفاع کند هرگازیانی برای شما بخواهد و یا اگر نفع اراده کند و خداوند به تمام اعمالی که انجام میدهید آگاه که شما گمان کردید پیامبر و مؤمنان هرگز به خانواده خود باز نخواهند گشت و این پندار غلط در تلهای شما نتی یافته بود و گمان بد کردید و سرانجام حلاک شدید و من بالله کی و آن کس که ایمان به خدا و پیامبرش نیاورده، سرنوشتش دوزخ است چرا که ما برای کافران آتش فروسان آماده کرده‌ایم مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمین از آن خدا هر کس را بخواهد میبخشد و هر کس را بخواهد مجازات میکند و خداوند غفور و رحیمه سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتفخذوها درونانتبع کن یریدون این كل قنا الله. الله من که شما در آینده نده بدست بد آوردن قنامه حرکت کنید متخلفان میکوک بگذارید ما هم از شما پیروی کنیم آنها می خواهند کلام خدا را تغییر دهند بگو هرگز نباید به دنبال ما بیا این گونه خداوند از قبل گفته است اما به میگویند می گویند شما نسبت به ما حسد می برسید ولی آنها جز اندکی نمی فهمند قل من ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتعلوا كما توليتم من قبل و متخلفان از اعراب بگو و زودی از شما دعوت می شود که به سوی قوم جنگ جو بروید و با آنها پیکار کنید تا اسلام بیاورند اگر اطاعت کنید خداوند پاداش نیکی به شما می دهد و اگر سرپیچی نماگید همان گونه که قبلا نیز سرپیچی مدید شما را عذاب دردناکی می کند نابینا و لنگ و بیمار گناهینی و هرکس که اطاعت خدا و رسولش نموکیت او را در باغهای از بهشت وارد می که نعفها از زیر درختانش جاری و آن کس که سرپیچی کند او را به عذاب درخناکی گرفتار می کند. لقد رضی الله عن المؤمنن اذ بایعونك تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فنزل السكن علهم وابهمفحاربخداوند از مؤمنانی که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند راضی و خشنود شد خدا آنچه را در درون قلب آنها نهفته بود میدانست پس آرامش را بر درهاوی آنها نازل کرد و فتح نسی که به عنوان پاداش نصیب آنها فرمود و مظاهم کثیرتا یحفظونها و کان الله عزیزا با قنایم بسیاری که آن را به دست میآورند و خدا عزیز و است، وعدكم الله مغانم کثیرتا تأخذونا فعجل لكم آده و کف الناس عنكم ولی تکون آیتا آية ولتكون آية للمؤمنین و یهدیكم فراغا مستقیما خدابند داد داده دا آنها را بچنگ میابرید بر این یکی را زودتر برای شما فراهم ساخت و دست دشمنان را از شما باز داشت تا نشانه ی برای مؤمنان باشد و شما را برای را هدایت کند و اخرى لم قد احاط الله بها و کان الله علی كل شيء قدیرا و نیز قنایم و فوت دیگری که شما قدرت بر آن ندارید، ولی خداوند قدرتش بر آن احاطه دارد، نصیب شما می کند و خداوند بر هر چیز توانا. اگر کافران با شما پیکار میکردند، و زودی فرار می نمودند سپس ولی و یاوری نمی آفتند سنت اللہی سنت اللہی قبل، ولن تجد سنت اللہ تبدیلا این سنت الهی که در گذشته نیز بوده است و هرگز برای سنت الهی تغییر و تبدیل نخاکی یافت وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه ببطن مكة من بعد أن أخذركم عليهم وكان الله بما تعملون بطيرا وذاتي كدست أنهار الشمار بدست شمار الآن در تلي مكا كوتاوكا بعد ذلك الشمار الآن في روسا با خدواند، با آنچه انجام می دهید، بینا. اُمُ <تصفيق> اللَّهِنَّ كَفَرُوا وَتَزَوُّقُوا عَنْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ فَأُم سَتُصِيبُكُم مِّنْهُم مَّعْرَضَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ يَقُولُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَئِن تَزَيَّنُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا منهم عذابا أَلِيمًا آنها کسانی هستند که کافر شدند و شما را از زیارت مسجد الحرام باز داشتند و از رسیدن قربانی های شما به محل قربانگاه مانع کشند و هرگاه مردان و زنان با ایمانی در این میان بدون آگاهی شما زیر دست و پا از بین نمی رفتند و از این را ای و آره آگاهانه به شما نمی خداوند هرگز مانی این جنگ نمی شد تا خدا هرکس را می خواهد در رحمت خود وارد سازد و اگر مؤمنان و کفار از هم جدا می شدند کافران را عذاب ده نمی کتی. إذ جعل اللّذين كفروو في قلوبهم الحنيّة حنيّة الجاهليّة فانزل الله سکینته على رسوله و علی المؤمنین و انزمهم کلمت تقوی و بها وأهلها وكان الله بخاطر بیاوری تنگامی را که کافران در دلهای خود خشم و نخوط داشتند و در مقابل خداوند آرامش و سکینه را بر رسول خود و مؤمنان نازل فرمود و آنها را به تقوا ملزم ساخت که از کس شایسته تر و اهل و محل آن بودند و خداوند به هر چیز عالم است المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رغوثكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا <تصفيق> همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام می شوید در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا ناخونهای خود را کوتاه کرده و هیچ کس ترس و وحشتی ندارید ولی خداوند چیزهایی دانست که شما نمیدانستید و قبل از آن فتح نستی که قرار داد هو الذی اورسل رسوله بالهدى او ذات است که رسولش را با هدا و جذب دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و کافی که خدا شاهد این موضوع باشند محمد رسول الله والذین معروع اشجداد نهم تراهم كعن سجدين يتغون فضلاً من الله وربنا فيما هم في وجوههم من أثنا السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في لك زرع اخرجت قهوه فاذرهو باستغلضت على صوته باستغلضت على صوته يعجب الزرع محمد فرساده خدا و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید در و میان خود مهربانند پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینید آنها همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان این توصیف آنها در تفاوات است و توصیف آنها در انجیل همانند زراعتی. است که جوانه های خود را خارج ساخته سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر برپاوی خود ایستاده است و به قدر نمو رشد کرده که زار آن را به شگفتی با می این برای آن است که کافران را به خشم آورد خداوند تسانیت آنها را که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند و عده آمرزش و عکر عزینی داده است